کارهای زشت او مخفی بماند از مخالفتی که با علی کرده خردگیری میکنید اولا اگر از نظر شما جنگ با علی خردگیری است از لحاظ خداوند متعال اینگونه نیست سانیان لکه دار بودن زندگی آیشه به زمان حیات رسول خدا برمیگردد چرا که اون همیشه آن حضرت را آزار میداد. چگونه به خود جرأت می دهید که به امول المؤمنین افترا بزنید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 هیچ مؤمنی ابوبکر و عمر را دشمن نمی دارد و هیچ منافقی آن دو را دوست نمی اگرچه استناد به احادیث یک طرفه جزء قرارداد مباحثه ما نیست ولی با این حال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 پشیمانی و توبه آیشه یک ادای محض و باطل است چون اگر او توبه کرده بود دیگر نباید مرتکب خطاهای بعدی میشد. چه می دیگر چه خطاهایی از او سر زده بعد از شهادت حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام بنیهاشه می خواستن جنازه متخر آن حضرت را کنار قبر جد متخرش دفن کنند که با مخالفت آیشه رو برو شدند آیشه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 تاریخ شهادت میدهد که این زن هیچ گاه دست از کینه توزی بر نداشت حال بگوید آیا تکلیف کسی که فحش و ناسزا به خلیفه عثمان بگوید چیست؟ فحش و ناسزا به خلفا گناهی است. ولی این موضوع چه رفتی به بحش ما دارد؟ شما به ما انتقاد می کنید که چرا به افعال و کردار خلفا اعتراض می کنیم در حالی که بیش از ما و پیش از ما آیشه به خلیفه عثمان اعتراض می کرده و می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 و دیگر نیازی به رأی گیری مجدد از مردم نیست. عشب، قول ابوبکر برای تعیین خلیفه رسول خدا سند است. اما قول رسول خدا برای تعین خلیفه خودش سند نیست. بگذاریم. حال اگر حکم عبو برای تعین خلیفه بعدی کافی است، دیگر فلسفه این کاری که عمر برای تعیین خلیفه بعد از خودش کرد چیست؟ عمر،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 چون همان افرادی که سه خلیفه قبل را به خلافت رساندند همانها هم علی را به خلافت منسوب کردند این فرمایش شما در صورتی صحیح است که ملاک خلافت امیرالمومنین هم مثل های شما باشد اما از نظر شیعه اثبات خلافت فقط بر اساس نس پیامبر خداست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 قرآن پدر حضرت ابراهیم را آذر میداند نه تاروخ. ما هیچ وقت در مقابل نس اجتهاد نمی کنیم. بلکه طبق راهنمایی خاندان رسول خدا به نکات ظریفی از قرآن پی می بریم که افراد محروم از راهنمایی های ایشان متوجه نکات نمی شبند. در عرف عرب به عمو و شوهر مادر نیز گاهی تعبیر به اب می شود. درباره آذر دو قول است یکی آنکه وی برادر تاروخ یعنی اموی ابراهیم بوده و دیگر آن که بعد از وفات تاروخ آزر با مادر ابراهیم ازدواج کرده پس ابراهیم به وی پدر می گفته آیا در جای دیگری از قرآن دیده شده که از امو یا شوهر مادر تعبیر به پدر شود؟ بله در آیه 133 سوره بقره آمده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 تاروخ موحد و خداپرست بوده پس تمام اجداد رسول خدا و علی موحد و پاک بودند اگر راه حلی هم درباره پدر ابراهیم درست کنید دیگر راجع به ابو طالب هیچ کاری نمی توانید بکنید چون مسلما ابو طالب در حالت کفر از دنیا رفته خداوند لعنت کند کسانی را که به خاطر دشمنی با علی به حضرت ابو طالب نسبت ناروا دادند و به آن حضرت تهمت کفر زدند. طبق نظر خاندان رسالت حضرت ابو طالب مبهد بوده و با ایمان از دنیا رحلت کرده. ابن اسیر می نویسد از اموهای پیامبر غیر از همزه و عباس و ابو طالب کس دیگری به پیامبر ایمان نیاورد.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 از این دلایل یکی اشعار آن جناب است که در مدح رسول خدا سروده و در آنها سریحن می میگوید من بر دین محمد هستم و پیغمبر حقی را یاری می میکنم که هیچگاه باطل در کلام او راه ندارد علمای شما این اشعار را نقل کرده و ثبت نمودند اگر جناب ابو طالب مشرک و بت بود باید همان روز اول که نبوت رسول خدا علنی میشد آن حضرت را من میکرد نه اینکه مشوق او باشد و به ایشان عرض کند امر خودت را آشکار کن به خدا سوگند هیچ کس تو را آزار نمی رساند مگر اینکه زبان های تند و شمشیرهای تیز ما را روبروی خود ببیند به خدا قسم عرب در مقابل تو به زانو در خواهد آمد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 علنا حضرت علی را لعنت میکرد و مردم را هم به این گناه عظیم این دستور میداد و هر که از این دستور سرپیچی چی می میکرد را شکنجه میداد و یا به قتل میرسند. آیا چون این کسی مورد لعنت خدا و پیامبر نیست؟ رسول خدا فرمود علی را دوست نمیدارد الا مؤمنین و او را دشمن نمیدارد الا کافران؟ آیا دشمن درجه ای که علی کسی جز مابیه است؟ به شهادت تاریخ معاویه دشمن علیس پس کافر و مستحق عذاب خارکننده اش چگونه جرئت میکنید به خال المؤمنین اهانت کنید در حالی که وی از صحابه بزرگوار رسول خداست و خداوند در مدح اصحاب رسول اکرم آیات زیادی نازل فرموده اشتباه شما و همفکرانتان این است که صحابی بودن را به خودی خود یک ارزش العاده میدانید. در حالی که آیات و روایات برخلاف نظر شما حکم کند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 و در سوره یوسف دو فرد کافری که با حضرت یوسف در زندان به سر می بردند را صاحبان یوسف نام برده. پس ممکن است مصاحب و اصحاب یک پیامبر حتی کافر و مشرک باشند. من نمیدانم چرا شما با نگاه خوشبینانه به تمامی اصحاب نگاه می در حالی که در بین آنها افراد منافق و بدکار هم وجود داشته،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 و سنت رایج نبوی واژگون در حال حاضر هم اهل تسنن برخلاف سنت رسول خدا از این احکام الهی روی گردانیدند آیا میلیون ها انسان خالص برخلاف قرآن و سنت رسول خدا عمل می‌کنند در حالی که مردم ما را سنی و تابع سنت می‌خوانند ولی شما را رافضی یعنی روی گردان از سنت نامیدند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 آیا کسی جز شما از اطاعت پیامبر در خصوص هلیت مطعه روی گرداند؟ دلیل شما بر حلال بودن مطعه چیست؟ در آیه 24 سوره نساس سریحاً آمده پس از اینکه از آنها بهره مند شدید مهر تعیین شده را که از آنان است و ایشان بپردازید از کجا معلوم که این آیه در مورد عقد دائم نباشد؟ در کتب معتبر خودتان از قول یکی از اصحاب نقل شده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 و پیامبر هم از آن نهی نفر بود. بس قطعا شما برای حرمت مدعی هیچ دلیلی ندارید مگر قول عمر. قول عمر خود سند بزرگی است. از شما بعید است. دلیل شما بر سندیت قول خلیفتان چیستان؟ اگر عمر حکم نسخ را از پیامبر نشنیده بود، متعرض چنین کاری نمیشد. اشتباه شما در همین حدسیات و گمانهای خوشبینانه و بیاساس است.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 عمر که خود مجتهد بود حکم پیامبر که یک مجتهد دیگر بود را نقص کرد کجای این دلیل اشکال دارد؟ سراپای این دلیل پر از اشکال است چه کسی گفته که حتی مجتهد معصومی مثل پیامبر اکرم حق نقض حکم قطعی خدا را دارد تا چرا صد به یک انسان جایز الخطا عمر صلاح مملکت را در این دید که مطعه را تحریم کند چون در جهان امروز هم دیده می شود که برخی افراد برای کامجوی یک ساعت زنی مسلمان را مطعه می کنند و بعد او را رها می کنند و موجب اشاعه فحشا می شوند با این حرفا نمی توان حلال خدا را حرام کرد و کار عمر را توجیه نمود اگر عمل یک اده افراد لاعبالی سبب حرام شدن حلال خدا می شود پس باید عقد دائم هم حرام شود مگر از این جهت چه تفاوتی میان عقد دائم و عقد موقت است جناب سلطان الواعظین قبول ندارید که حکم مطعه باعث گسترش فحشا می شود؟ به هیچ وجه به نظر من اگر این حکم شرعی در جوامع مسلمانان رایج بود زمینهای فساد و فحشا به شدت کم میشد. جوانی که قدرت تامین هزینه‌های ازدواج دائم را ندارد و شدیداً تحت فشار قریزی جنسی است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 به مادر موسی و زنبور اصل هم وحی شده در حال که هیچ کدام پیانبر نبودند. آیا خبری در این زمینه در کتاب‌های ما موجود است؟ علمای شما از عباس بن عبدالمطالب نقل کردند. هنگامی که علی متولد شد جناب ابوطالب و فاطمه بنت اسد به کوه عبو رفتند و از خداوند متعال نامگذاری طفلشان را خواستند. ناگهان صدایی از آسمان بلند شد و لوحی سبز رنگ به دست ابو طالب رسید که در آن اشعاری نوشته شده بود مضمون این اشعار آن است که شما را به فرزند پاک و پاکیزه‌ای که منتخب من است اختصاص دادم اسم او را از جانب خدای اعلی علی بگذار که مشتق از اسم علی اعلا پس ابوطالب طالب به سجده افتاد و به شکرانه این نعمت عظیم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 فضیلت دیگر آن حضرت شدت زهد و تقوای آن وجود مبارک است. به قدری آن سرور در این زمینه در بود که دشمن درجه که ایشان یعنی معاویه ملعون گفته زنان عالم از اینکه مثل علی را بزایند عقیمند.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 علمای خودتان به این حقیقت اعتراف کردند که علی بعد از شش ماه اجبارن با ابو بکر بیعت کرده. در این صورت حتما یک جهتی داشته خودشان در آن موقع بهتر می دانستند که چه می کنند. به ما چه مربوط که در امر بزرگان و اختلاف آنها بعد از 1300 سال دخالت کنیم عجب هر فرد مسلمانی مکلف است که با تحقیق و بررسی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 پس باید قیام میکرد، نه اینکه بیعت کند و به نماز ایشان حاضر شود. اولا بر طبق عقیده شیعه انبیا و اوصیا مطابق دستورات الهی عمل میکردند. اگر در موردی جنگ کردن، مطابق حق بوده و چنانچه در موضی دیگر صلح را انتخاب کرده‌اند باز هم مطابق حق و طبق دستور پروردگار بوده. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه به مردم مصر نویسد،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 با توجه به این مطلب واضح است که امیرالمومنین ریاست و حکومت را هم برای خدا می‌خواستند. پس اگر صلاح دین خدا در رها کردن حکومت است، او این کار را می‌کند و اگر صلاح دین در تصدی حکومت است، باز هم چنین می‌کند. آن حضرت در خطبه شقشقیه می‌فرماید سوگند به خداوند که پسر عبیق و خلافت را مانند پیراهنی به تن کرد به حالان او میدانست جایگاه من برای این امر مثل قطب و محور آسیا است. علوم و معارف از سرچشمه فیض من مانند سیل سرازیر می شود و هیچ پرندهی در فضای علم و دانش به اوج رفعت من نمی رسد. با وجود این،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 این خطبه مربوط به حضرت علی نیست، از سید است، و اله آنجناب هیچ شکایتی از خلفا نداشت. بزرگان از علمای خودتان اقرار دارند که این طرز بیان منحصر به امیر مومنان است. جمع کسیری از اهل علم و ادب قبل از ولادت سید رزی این خطبه را روایت کردند. ابن عبل هدید به نقل از ابن خشاب می این خطبه را در کتابی که تاریخی نوشتن و تعلیف آن دویس سال،